خدا یا دین فرستادی عمل که نکردیم به ما گفتی اخلاقت دین دروش گوش که نکرد گفتی اعتقاداتت این گفتی بیا با من حرف زن ما نیومدی گفتی بیا حرف منو گوش کن نیومدی گفتی با من مناجات نمیکنی گفتم نه گفتی از بودنت با من خوشحال نمیشی خدا گفت 1/1 اون خوشی که با دیگران داری انگام بگو خندنی نمیتونی یک دهم از اونو با من داشته باشی تو روز. نه یکصددمم، نه یک هزار. شد یه نیمه شبی به خاطر من بلندشی دو دقیقه با من حرف بزنی چندتا تا ها نیمه شب با دوست داد گفتی و خندی. چقدر داستان های دنبال دار و رمان ها و مجلات و خوندی؟ یه شب شد تو تنهایی که هیچشکی نبود قرآن منو کنی بگی. خدا یه چند کله من حرف بزن. کلام تو رو میخواام شود. من که نکردم پیچ کدوم این کار نکردی خب اجا کن نمیخوری با ندارم نترم وازم من میام پیشت ای ناس قد اقبل اله کن مردم اومد به سوی شما شما که تکون نخوردی حالا ماه خدا اومد به سوی شما شهر و رمزان, رمزان می دانید یعنی چی؟ ازت سوال میکنن این ماه رو چرا رمضان نامیدن رمضان یعنی شهزت فرمودن به خاطر که یهرمزفی زونو گناه ها درش آب میشه زوب میشه رمزان اون شدت حرارت رو میگن شدت حرارت اون تو این شدت حرارت رمزان برای این نیست که منو بسوزونه اومد گنا های منو بسوزونه که پردن خدا آتیش منو رو نسوزنه من. بطرمود رمزان اسمی از اسمهای خداست خدا تو آمدی پیش من به وسیله ماهت شهر و رمزان. آی مردم خدا اومد آی مردم این دفعه خدا با پیغمبرش نیومد پیغمبر نفرستا این دفعه با ماهش اومد خدا اومد ما خیلی با خدا بد حسابی کردیم. خیلی بد بودیم. ملت فرار کنید. خدا داره میاد. نه نه. اومده این 30 روز با هیچ کار نداره. اومده به برکت و رحمت و المغفرت. اومده ببخش شما رو. اومده ببخشید. اومده به زندگی برکت بده.